ای داری اشک واینم دل تو من تی میداریا دنجی نره خوشی بالم جانم وقت فکر کردم همیشه ناسر رحم کلوب دیرینا جست موارد زمینا دنیا دن جنب تو دبا وشی گرمی تو در فریشقی نشتی من بود او رو جلیل تو دو بود نشیان پشی من بود bilojik bit bin mafa Abhi shala sar sadaaya roohm kuno deena just amawar e zameena dunya dange fadaaya isgarm kalam ha ای دایش، ای دایا، ایش کو آلینه، ای دایا، ایش کو آلینه. دور